فیلم هرچی خدا بخواد کارگردان نوید میهندوست بازیگران حامد کمیلی سرانه علی دوستی رزا اتاران رهنما سعید آقاخانی، ارژنگ امیر فضلی پوریا پورسرخ بهنوش بختیاری فرهاد اصلانی موسیقی مت ستار اورکی آهنگساز و خواننده: پیام سادهی نویسنده و تهیه کننده: پرویز شهبازی لطفا. شما دقیقاً می مدل رو يرن بودن. چند تا داریم؟ 8. بی فنش. دو تا. سلام، خواهمی؟ نه. نه. فکر می کنم من یه مقاضی‌تر رسیدم. عصبانی میکنم. نه، من ازو‌تر رسیدم بفرمایید. تازه چقدر معصلیه. من سوال خودم نیستم. اصلا حالم منم سوال خودم نیستم. منم اصلاً حالا خوب نیست. یعنی چی خانوم؟ توید مسخره میکنی کنید منو؟ مسخره چی آقا درست صحبت کن. با هم میرسید بحث نکنید. دو دختر در گوشم چیزی میگن و میخندن. آقا جنس شما ویتینگ لیسته باید تشریف ببرید دفتر فروش برای تایید مثل بیلیت این خانم. خانم چرا بهانه میارین؟ بلیط بلیط دیگه چه فرقی میکنه؟ عرض کردم بلیتتون رو تایید کنید در خدمتتون هستم. یکم عجله کنید میخوایم ما کانتر رو ببندیم. پنج یا راه رو. فرقی نداره تا من برسیم زودتر. باری چیزی اگه داریم بذاریم بالا نه فقط همین چه همه دون دسته بفرمی مرسی بروسه هنجره یا راه رو فردی نمی کنم فردی تا برسن دیگه بایش ماهیم کستم باری تون رو بذارید بالا بار ندارم پقط همی کهیت مسفراتی متشکرم. موشکرم و ونداد به فاصله یک قدم از هم به سمت گیت پرواز میرن پاهای ونداد به کیف پارمیده گیر میکنه و سکندری میخوره ببخشید شما مسکی دنبال در سر میگردید امروز نه؟ گفتم ببخشید دیگه بفرمید با اصابانیت کیف که روی زمین افتاده برمیده و به سمت گیت میره پارمیدا جلوتر وارد هواپیما میشه. سلام هوا بشه بشه. من و توی ردیف دو نفره کنار پنجره میشینه. و به دنبالش وارد هواپیما میشه. از روی بلیط میفهمه سندلی کناری پارمیدا باید بشینه. نا سیم میکنه می‌کنه. می‌خواد جاشو عوض کنه اما به ناچار روی صندلی سمت راه رو می‌شینه. هر دو جدی به جلو خیره هواپیما <تصفيق> از روی باند پرواز بلند میشه. فرمیدا اشکاش روان میشه ونداد با کنجکاوی نگاهش میکنه. اما بعد به بالا نگاه میکنه و عشقای اونم آروم آروم سرازیر میشه مهماندار پذیرایی میریم فروض کیش دو مرد در کنار هم به سمت مسافرایی استادن با دو تا کارت به نام‌های نصیری و تاهری سلام من نصیری هستم و بنده ویتوری هستم چی ویتوری ویتوری چه اتفاقی افتاد آقای ویتوری چی شده؟ الان عرض می‌کنم خدمتتون خب ما می‌تونیم بریم الان یه لحظه اگه کمک کنید من و بنده طاهری هستم ها آقای بنداد سلام آقای من بنداد طاهری خیلی خوشیم. ونداد خوشیم. به پارمیدا با تجرب نگاه میکنه. آه. کارت دست مردم می بینه که اسم پارمیدا نصیری روش نوشته شده آه. اصلا دوست نداشتم که توی همچی شرعه ایتی ببینم اتون سیامک سیامای چندون خانمو برده آه. پارمیدا به ناچار با اونا همراه میشه. شه پشت سار مردا راه می هر دو کنار هم و این هم توجه پارمیده رو ببخشید می کنه ببخشید مورایی ببخشید بفهمید بفهمید از در فروتگاه خارج می مرد جوان تک به سمت ون سفیدی میره. در ون باز نمیشه. ویدخوری به مرد جوان اشاره میکنه اشتباه گرفت و لن سفیدی کناری ماشین اوناست. در باز میکنن و سوار می شن. توی جزیره حرکت میکنه. کنن. روی سندلی جلو کنار مرد جوان و پارمیدا و واندات خوش نشستن. اونا بیرون رو نگاه می کنن. به مرد جوان اشاره می ده رایت کن و صدای دستگاه پخش ماشین رو کم کن. قبلا که همدیگر رو نه؟ نه. چرا میپرسید؟ همینجوری، همینجوری. بود. شما به شرکتمون زنگ زده بودی؟ نه، سیامک به شما زنگ زد. من بودم عزیز. سلام برداشتنی من با دانشگاه پالمیدا خانم تماس گرفتم. ببخشید خانم من بجور که نگفتم خب، شما پسر بزرگی آقای تاهری هستید درسته؟ دلیل من به نیروی انتظامی تهران گفتم تمام مدارکی هم که داشتم نشون دادم. هم دارم به شما میگم. فکر می کنم کلا تفاهم پیش اومده. بین ما از در جریان جزیات ماجره و این حرفا نیستیم الان هم اگه در خدمت شما هستیم فقط به خاطر این ثانیه دریایی که اتفاق افتاده همین. مادر من چی شده؟ آقای ویتوری. متاسفانه دچار چار دریایی شده. پدر من چی؟ به قول شما. پدر شما هم همیتوز. ایشون هم متاسفانه دو چار دریایی شده. که این اتفاق افتاده؟ همین دیروز. مادر من کی؟ ایشون هم همون موقع. جواباتون یکیه چون تو یه قایق بودن. چند نفر سوار قایق بودن؟ چند نفر دوشار صانهه دریایی شدن به حال شما؟ همین دو نفر که در شما مادری شد ببینید مادر من پنج سال پیش فوت شده پدرم من 9 سال پیش تو شار صانهه زمینی شد خدا بیام خدا خدارم هم <تصفح> بابا نظید چه خبر ندارم؟ میدونم وال وارد ورودی هتل میشن الان برنامه اینه که شما تشریف این تو هتللی کم استراحت بکنید بعدم اگه خاصین یه قایق می‌گیریم می‌ریم محل دقیق سانهی دری رو با هم دیگه باز دیگه می‌کنه. بفرمایید. یادت میشو درو برای بچه‌ها باز می‌کنه. ما خودمون اینجا یه آپارتمان داریم. بلوار میرمران. اگه میشه ما رو ببرید اینجا. بله می‌دونم خونه تون هم بلدم. اینا کلیدش هم اینجاست. اون تمام نمیرا این کلید تقدیم یک کدوم از شما باید بکنه. نه دیگه چون سه دوم اون آپارتمان به نام پدر آقا است. بریم ما اینجا هیچ کارسمایی نداره. نفرمایید آقای مهندس نفرمایید. اینجا خیلی چیزم متعلقه شد وارد هتل میشن ببین آقای ام... بید خوری بید بید بید, بید خوری بیمان خیلی میکنم اصلا دلیل نداره بریم اون محل سانه هر رو ببینیم ببین چیکار کنیم دیدن نداره می مستقيم بریم جنازه رو ببینیم تو هم به شما بگم این بابایی که تصادف کرد در استان دریایی شده دو چهار استان دریایی شده به قول شما پدر من هست یا نیست من کلی کارو زندگی دارم چیزی که تمجوری ول کردم بعد برگردم با پرواز نتی ببخشید من اصلا تمایل ندارم محل چیزو استان دریایی مامانم رو ببینم میخوام جسد مادرمو بعدا برم تهران با اولین پرواز خواین اس هیچ خبر ندارم <تصفيق> عجلا نکنین ما فعلا در خدمت شما هستیم شما الان تشریف ببرید تو اتاقاتون استراحت بکنین براتون اتاق امن بدیسین چون در حال حاضر نه مادر شما و نه پدر شما هم وجود ندارن که شما بخوین ببینین یا شما بخواین وارد شین ببینین چون هنوز پیدا نشده <تصفيق> یعنی چی یعنی پیدا نشدن دیگه عزیز هنوز تو دریا ان البته حادثه کارشناسا که دو تا دریایی شدن و... مسخره کردی منو هیچ ای دریایی سانحه دریایی در ورودی واسه من غرغشو با من است. آقا اصلا واسه چی ما رو کشوندین اینجا؟ جریان میگم جزبه پدر من نیست. متوجهی؟ <تصفح> <تصفح> برای چی می‌خوین بچه‌ستون رو نش به من؟ اصلا کیه این یارو کی کاره؟ پدر من, من باشه. من ندارم شما تشریف بیارین، یه لحظه تشریف بیارین من کارم کارام. میکنم کن. میکنم با تشریفین شما. می‌ذکوری سیامک رو می‌فرسته سراغ پذیرو شو هتل. لابی می‌شینه. بفر بفهم بشینید. یه ذره آروم بشین، من که ازم کار خدمتتون. ببینم شما از دیروز با مادرتون در تماس بودی؟ موبایلش خاموشه خونه و مغازه‌ام جواب نمیده نه در تماس نبودم خب شما جی با پدرجون تماس گرفتید بخدا من میگم پدرم نه ساله که فوت شده چیکار میکردم اس ام اس میذارم به دیار باقی ببینید این کپی کارت شناسایی پدرتونئه که باش قایق اجارشو یه لازکسی تو نگاه کنین ببخشید من پشتم به شما سن. اصل این کارتم الان تو همون شرکتی که قایق‌هاش اجاره کردم. حالا این عکس ثبتی پدرتون هست جان لازمیه که خیلی شبیه ولی همین دقیقا من به گیشه حسابی پدر که 9 سال پیش باطل شده. ولو من نمی دونم ولی من نمیدونم ولی میشه ازتون خواهیش کنم اینقدر نگید پدر من نیست پدر من نیست. این آدم کم شخصیتی نمیشه به اینجوری. شما باید افتخار کنید که پسر همین آدمی هست. دست درد نکرد. ببین مادر شما رو ما میشناسیم. مغازه‌ش هم بلدیم. ببخشید هم پشتم به شماستم. این دو تا با همدیگه بوده بودن. گفتید دو تا چای بیارن. گفتم گفتم. از طرف شرکتم به ما اعلام کردند که یه خانومی با یه آقای موسی اومدن یه جایی اجاره کردن. حتی به ما گفتن که اون خانوم گویا اینامه پایقم هم داشته. درسته؟ مادرشون حافظه گواینامه داشته. بله، 10 سال اینجا زندگی میکنه. خانم چطور این اتفاق افتاده؟ شاید زنده باشن الان. هیچ چی معلوم نیست. چون 12 ساعت پیش تازه که ما ازشون خبری ندیدیم. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ تاکتیک ما چیه؟ شما تشریف می‌برید اتاقتون رو تحویل بگیریم ما در خدمت شما هستیم. لطفا کنید فرم ما رو دو ورگه روی میز می‌گذاره. می‌شینیم. بفرمایید. مرسی مریسی. هر دو خودکار از جیب در میارن. شما زحمت بکشین قسمت رو مثل این خانه بر من کنین. اومیداره هم منظره اتاقتون خوشتون بیاد؟ خیلی ممنون. واسه ویدیو چطوره خوب بشه؟ خیالتون سن راحت. همه همه‌ی اتاقامون خوبه. شما برید من کارت اتاقتون رو میارم. پارمیدو و, پار و بندا دور میشن. هر دو وارد راهروی هتل میشن. خدمت شما اتاق 516 و 519 و داخل اتاق 619 و 515 ونده در اتاقی نیسته پارمیده هم کمی جلوتر روبروی دری نیسته کلیدا در رو بزنه می کنن بخشی. ریدار با هم دیگه आवाज می‌کنه. هر دو دو اتاقشون میشن. هر دو پرده رو کنار می‌زنن. ونداد زیپ ساکش رو باز میکنه و جوراب سفید و نازک زنونه ای رو بیرون میاره. کارمیدان می از توی ساک کمربند ای رو بیرون میاره. در اتاق باز میشه. ببخشید فکر میکنم که کیفه آغاز شده من شده پارمیدا وارد اتاق ونداد میشه و در میبنده در باز میشه کت وندادو بهش میگه <تصفح> خیلی ممنون در رو میبنده از چشمی به ونداد که پشت دره نگاه میکنه <تصفح> وندات دهنکجی میکنه با اصابانیت بسن تو اتاق دیگه توی قایق نشستن پاربیدا کلاه آفتاب گیر به سر گذاشته همه لباسشون عوض گردن نگرده نگرده اینجا نبودا؟ چرا؟ من خودم اینجا علامت گذاشتم اینجاست بعضی ها میگن که ممکنه همینجا جاها قرار شده باشن چون امتهای محدوده قایقای تفرید دقیقا همینجاست ونددو پاربیدا به اطراف نگاه پار میده، انگشت اشاره شو توی آب کنه و فاتحه میفرسته. فرسته و به تباییت از اون همین کارو میکنه. می کنه خدا بیان خدا چه اتفاقی ممکنه درشون افتاده باشه اینجا که خیلی نزدیک ساحله بله ولی بل غیبشون زده دیگه چون راننده وارد باشون با نبود اصلا رانندگی تو دریا خیلی فرق داره با جای دیگه درسته؟ آ بابا اینجا که فارس راننده کی بوده؟ آه معلوم <تصفح> مادر ایشون میگه با راننده می رانندگی با قایق شدن. واسه همینم بیمه خسارتو قبول نمی کنه چون راننده مورد تایید سازمان بنادر کشترانی باشون نبوده. اگه راننده برده بودن حل بود. بیمه تمام خسارتو میداد. عجب. حالا اگه من بی خودی اومده باشم اینجا چی؟ یعنی این آقایی که غرق شده پدر من نباشه. وقتی ای شرکت اینا کرده اومده میشه خسارت منو کی میخواد بده؟ من خودم شخصا تقدیمتون می کنم. بنده هشت سال در خدمت ابوی گرامی بودن. دفعه اولی دارم شما رو نمیبینم. بله ولی ما دورادور زیاد شما رو زیاد پیدا کردنشون چیکار باید بکنیم؟ خب ببینین ما دو تا راه داریم یا باید بریم قواص بیاریم بره زیر آبو بگرده بیداشون کنه یا اینکه نه انقدر صبر کنیم که موج جنازه هاشونو بیاره بندازه ساحل. درسته؟ درسته امکان داره بیاره کیش، ببره چاره، کندرابی قارور بذاره هم میتونید بگیرید قواس هستش چند متر عمق اینجا تقریبا 3 متر خب من قواسی بلادم خودمه گشتیزی رو آب میزنم کار شما نیست اینجا خطرناکه خلیج فارسه نه من قبلا قواسی کردم اینجا گویا قواسی داره گویا ایناوتون مثل مامانتون که نیست شاهدید فکر کردی شما خواهیدید منم قواسی بلدم اصلا من گواهینامه بین‌المللی قواسی دارم پرچه دهنیا ماسکتون دیگه این با است شما اکی هوا اوکی. با شما بشه من رول بکی کنی یک دو سه لباس قواسی بوشدن با یه قواس دیگه دارن آماده میشن وارد آب میشن وانداده بیدخوری کمکش میکنه داخل قایق بشه خیلی اوه یہ ساراอะไร بابا یہ والا چلو شکریہ والا زای کسو ناخو اینجا ازدواج کرده بوده ها بود چه میدونم یه آدم مهمه انگار یارو بابا بیا شناسایی چیزی اینجا همه مرا میشناسن ولی دفعه تو خودش اندازه نبینم مطمئن نمیشم من ناپدید شده دیگه پسرش الان اومده تو گوش کن ببین من چی میگم اینا میگن بعدم منتظر بمونین تا پیداشون بشه ممکنه دو سه روز طول بکشه اخر اینکه جنازه‌ای الان در کار نیست میگن تو درگذشته چوری سانحه‌ای دریایی شده اون بابای ما چرا هر وقت می‌میره جنازهش نیست میشه نو سال پیشم که دفعه اول مرد گفتن جنازهش نیست آره من کاری داشتم بهت میزنم دست درد نکنه ببین جای اینجا هتلو گران قیمت گرفتم برا ما من پول خیلی همراهم نیست یه تو هممتونی جور کنی به حساب من بریزی بابا تازه اینجا زنم داشته بله کنار دریا تو می‌زنم بگو ونداد دو سه روز کارهای اداری داره درگیر تیر ترمیات فقط ما حواست باشه چیزی نفهمه ها دو مرد با پیران های بلند جنوبی یکی سفید و یکی سیاه وارد هتل میشن. اینا رو اگه بذاریمون تریخت شده، اون شب قشنگ خونه که بودن. یه جوید. شیخ میگه آب که دسته تب زمین. به چشم. ما خدمت شیخ طاهر ارادت داریم. بازماندگان تاهرین را ببر پیشش. به چشم. هردو به سمت سیوم و بیت که کنار کانتر کافی شبنم شان میرن مرد جوانی از فرودگاه کیش خارج میشه سوار تاکسی زرد میشه هتل فارم. جلو. مرد کلاه و خانم جوانی پشت سر اون خارج می اوتل... و هتل فارم. فارم است هتل فارم. ساواش. هر دوتا تاکسی جله هتل توقف میکنن. مرد جوان و بعد زن و مرد پیاده میشن وق براجا از دیگه منظورش از راه کنار پله هاست به خاطر چمندون غقه دارشون. دختر جوون وارد هتل میشه. مردم با چمدونشون جلوی در شیشه هتل میرسه و چمدونش محکم به در میخوره با چمدون ریزن مرد که همون دایه بلند میشه و به در شیشه میزنه اما باز نمیشه مسافره به سمت در میاد در باز میشه مرد با احتیاط داخل میشه بید که این چرا اینجوریه؟ گوشی تلفانه توی هموم و انداده بفرمی حیلی من تویی چه خبر؟ لابی کجا؟ تو حاسه چی اومده مگه بهت نگفتن برون تیرون دیفونه؟ لابی خودشه باباست. هست؟ آره اینگاه با بیرون ببینیم اشید. شما که گفتید مرده کشتنش بابا هم چیزی بود که اونها اومدن گفتن اصلا خود ما چی بالا بابا نه دایی چرا اومدی یلدا جان تو چرا زحمت کشیدی گفتم لرینی این منو به زوکشون می‌کشه عزیز من پارمیدا اینجا تناس تناش می‌ذاشتین به جون خودم پارمیدا شنییدم جیگرم آتیش گرفت این بود دیگه ای وای توف به حالا این خانواده‌ای که باش مشلط کرده وضعیت مالیشون چه جوری دایی جان یه وقت بی برنامه کاری نکنی فیالت راحت بشه پول وردی برای من همه شما هایه چهار ستونستم به زور برای جور کنم بیارم آره اونم از من گرفت. آره رستیم گرتم آره راستی یه سی ستش هم دادیم برای حواب پیمان یه ست تومم بوده اونم الان یه ست تومم سلام علیکم حالا شما الان میم خدمتون برام سلام خدمت بایه او سلام علیکم. بفرمایید. خواستم بگم آید بیتکوری مثلا همین مثلا کارم افتاده رو دوشه. همینجان وظیفه است کار کردن. خدا من ایمان. به حال شما چه آید دکتر خوب هستین؟ آقا چرا ول کردین شما این رشته پزشکی رو؟ حیف اون رشته‌ای تو اون خوبیه. بنخید. شما این را کجا میدونی؟ ای بابا ما رو دست کم گرفتن. آقا راستش تاجدینی تماس کرد. میشناسیدش که؟ تاجدینی؟ بله. خیلی اسمش آشناست. بخشید تو اولین فرصت خودت میرسونی کیش. اگه اجازه من یه لحظه عذرذایی بکنم خدمت شما نذری میام خدمتتون. شما فکر کنیم این تاجدینی یاد تو میاد یا نه. بیت‌خوری میره. الان پدرین خانما را کجا مشیخته؟ آقا این کیش شده. خانم من اس یه مغازه داشته باشه اینجا اش شده بده وکیل مرحوم تاهیری گفتن که به محض اینکه جسدیشون پیدا بشه خود خب می رسونن من کشیدم زودتر اومدم مرحوم نیستا خیلیام خوبه باید بیان اصلا اومده شما سریع به من معرفیش تو بالاخره یه چیزایی باید مشخص بشه دیگه مثلا چی خیلی چیزا مثلا الان خرج سفر ما با کیه والله من این چیزا رو دقیق نمیدونم فقط خود تاجدین نمیدونه الان شما کدومم تو ساکن ما راغت چون تازه رسیدیم. الان جای ساکن نیستین اگه بشه هم جا جای خوبیم، میشه ساکن شد اینجا ببخشید این چه اینجا پنج ستاره اینجا 5 ستاره است چند آقا هنج. آقای بیتخوری نیازی نیست اصلا ما میتونیم یه جای ارضونترم باشیم نه نه نه نه به هیچ وجه تاجر دین دستور داره شما اینجا باشین با هیچ چیزم کار نداشته باشین اصلا اتاق ارضون خوابم نمیبره میدونید حالا شما تشریف داشته باشیم. من سوال میکنم شاید و تا خالی برای شما یا الدا خانم آقای ما هم تازه هزار رسیده البته نگران نباشیم اگه جانبو سرویس اضافه میگریم شما تشریف پاییم تو اتاق آقا ایون یلداخانم هم امشت ببخشید دیگه میان تو اتاق پای میده ایمان بله بله مستم تو اگه تو آقا ایمان همه چه به دلده بود ندوی تو جیرم بزنم تو دنش ولی من اولین بارم میبینمش تو حواست نبود نه بابا این داداش مهندس فرانسه بود آدم استابی فکر نمی‌کنم ماشاالله من اصلا به این کارا کار ندارم من بعد اتاق جدا بگیرم عز دارم نمیتونم با کسی سرویس جدا میگیریم روی تخت منظورم نبود با هم بخواب آقا میگم من عز دارم من خوابم میبره دیگه حواسم نیست کنترل ندارم نمی‌دونم چه میگی آینه خیلی خوب از نکن جن من حواست باشوالا اگه اینجا داشتن چشمی ای بیکاریش میکنم فقط حزینه شو بهتون مهم نیست نه مه. حزینه نه باشه باشو پس کارت ملی شناستامی چیزی بدین کارت بودم منم که نای بردم تو حفظه ما با درد سم سوار شد دستانم قربونه <تصفح> برو حله محلسه که محلسه من چی؟ داری پیلیز اکی غلط کرد آف بله تشیف بیاری الان پار میدخوانم و دایی هم بیان حرکت میکنی بفن. همه سواره بند میشن تنگلان حال شد دایی باز با در شیشه یا هتل مشکل داره در باز نمیشه با... چی شده دایی جان؟ یه بوده بله بله میشن این دره با حاله میکنه دایی دایی جانم چیه دایی این یا که منو خود کرده یه فکریش بکن چی شده بی اجازه فوساپوشیه منو براش تمام این باکس منو چک کرده ای بابا چی توش شده بابا منو دیگه واسه خاطر صبر میشه تو اجازه با. کی میرید چیزه شما چیزه دوباره اومده چیزه دیگه نبرین فعلش تو کی برنامه‌ریزی سر شما میگه حق نداری بری تو خیلی عجله نکنین کیس تو از جای دیدنی من سر تا شیفته میاری شما؟ بله بره داره. بیت خوری جاله نشسته مک آینه این ماشین رو به سمت یلدو تنظیم می من نمی ما برای چی بایدیه پاندس جان گربونت برم شو اگه خبر نداری اگه این شیخ طاهر میماتون هتل رو سرمون خراب میکردین این میدونی دیگه اون هفت نمیشه هفت سر حالا یه سفر به اتفاق هم دیگه میریم و برمیگردیم دیگه ای اینجوری نگاه کنید اینجوری ببینید سقف من یه کاری بسیار بزرگی رو نشون میده کدوم همون دیگه اوناش قرار بود این پنج ستاره بشه چند ستاره 5 قرار بود اسمشن بذارن هتل پارمیدا اگه این ساخته میشد یکم بهترین اوتلاه که میانه یا ولی نشد دیگه حیف شد عشب زرپولی بوده چی به تو میکن شکتاهر با سه تا مرد دیگه دارن قبر میکنن جنازه تاری نباید از کیش بیرون بره فهمیدید؟ ولد کبیرش کیه چیش؟ یعنی که پسرش کیه آها با تو نه تو زرگ مارد برو اف بله بایدتون من هستم من نباید بفهمم تاهری مرده خود ما هم تازه فهمیدیم بله ششم من دوست واقعی تاهری هستم من رفیج بودیم با هم دوتا رفیج واقعی فهمیدی؟ بس دوتا رو در دوتا بدن بله دقیقا شیخ تاهر یعنی تاهری تاهری یعنی شیخ تاهر تو نه نه تو من؟ نه مترو 15 برو عقب بیان اینکه یازده قدم بله چی آخر برو برای اینکه تو آقا هوایی برای اینجا بده برو دور برو دور برو برو برو دیگه بحث نکن. آخه چه برو برو برو خیلی خوب یک دو سه قیافت بیار جلو چار بیا اینه بگیرش بیا جلو تر بیا هفت ما مثل دوتا برادر بودیم با این تارالی به خودم مثل دوتا چی چی؟ او این چرا دوباره سربنیز شد شما به والله اونه نمیشناستید ببینیمش احتمالا میشمستیمش فریدون رو هم با خودش برده بله متاسفه اون چرا با خودش برد او به ارزان افر فریدون آدم نیست که خیلی ببا اینو آی پسر چونه؟ بگو بله بله حف نزن گوش کن بله جنازه که پیدا شد بیاریدش اینجا من خودم دفنش میکنم باید نمازش حتما بخوانم اون بنده خدا آرزو داشت که یختی مرد خودش با پای خودش بیاد اینجا تو همین قبر دفن بشه فهمیدی؟ بله. من خودم به مردای خودم میگم که برن ساحل بگردن، بلکه شاید پیدا بشن. بریم. راجستر کن، که اصلا بالای سرشون نیومده باشه. چی داری میگی؟ چه اینا مرد میزنی ما چی میگی تو؟ بیا نزدیک‌تر. نه نه. تو همون فاصله رو را رایت را کن. هی بابا، با اگه می‌خوای زرباز آزاد بزنی، سه بار آمد سر بشه. این بار سهوه مشق بود. براواز زرباز بودیم ما. زمان مصدق ما طرفدار مصدق بودیم. خودتا که شد اعدام من درآمد گوشت با منه بله 12 سال سربنیست کردیم خودمانه من جزایر اطراف بودم سلام علیکم اون فرستادم کجا کویت از طریق تایفه خودم براش شناسنامه گرفتم سلام علیکم سلام فرستادمش از جزایر فارو رفت بار دوم نه سال پیش بود آمد پیشم از تارانو بود بود میگفتش دنبال من میخوان من بکشن پناه می‌خواست گفتم بیا همینجا بمون براش وام مختصری گرفتم اومد اینجا از این خونه ها سخت گوش کرد دار دس دست مردم خودم براش خواست. اینجا آدم محترمی بود همه دوستش داشتن بنده خدارات اما این دفعه دیگه نفهمیدم چرا سر بلیس شد این دفعه دیگه کارش تموم. براش باته بخانید بسم الله الرحمن معلومیش شاید همینوز زنده حمال الله الرحمن حمال رحیم مالکشو داخل من بسم الله الرحمن الرحیم. من درم بهت میگم ما در وزرگ بفهمه است اکده میکنه میمیره نمیذاریم فامیل بفهمه تو اینجا دفنش میکنی فقط میدونه پروانه بفهمه بیچاره شدیم دایی داره به حرفاشون گوش میده ونداد میبینه جاشو عوض میکنه فارمیده جم اه. ببین من شرخ ظاهر با آن که نم باید بر ما بگیره ما ای هتل بابا اه این نه من تو میونه دیگه چون جنازاشن پیدا نشده میگیم تشوّهای اسمی میده تاجیتینی هم میگه درستش کنه بابا من میگم انشاءل جسد که پیدا شد درش میذاریم میبریم شهر خودمون همونجا خواب میکنیم آه تاجیتینی تو تازه یادم افتاد چرا گیجی ما بابا آلزایمر گرفتیم بخود و ان تو خیابونا به حرکتش ادامه میده یه قایق وسط آب مردان شهر یه چیز سیاهی رو آب میبینن بیرن جلو میبینن یه قواص زنی که مرده صورت ما یا خورده بودن ولی صد ترصد مادر شما بوده تصدیت میده سمت جسد قواصی میره که صورتش داخل آبه چی شد؟ من خدا چی شد بابا؟ خب حل دیگه خدا روشون شناسنام فقط اینجا بذارش اینجا یکم آب بیار آب بیار آقا فقیل شناسنام هره اگه لطف کنی شناسنام بار میده میگن اون شناسنام این مامان ها اگه میشه بده شناسنامش که دست خودته آها شناسنام آقا دست خودت بدین اونجا بسه میگید دازم یه لحظه بیا یه لحظه اینجا بیا بیا آهان، گفتم بیخاله. بفرست. ببین، به این پسر بزرگ آقای طاهری میشه چیه؟ خب، بله. والا خب آره، میری به اون میگی که این حرف خیلی مهمه، حرفی پارمنده خانم از طرف بله. من هست. من میگی میری بهش میگی که ما فردا رو میبریم تهران، پس فردا همون جا تشییعش میکنیم هر کس از آشنا میخواد میتونه بیا توی مراسم تشییع شرکت کنه. من یه متن هم نوشتم. اینو می این روزنامه های انتشار. رو خوب میشه نه؟ که بله هر کس برساصه بله. چون چند شخصیتی نموزه دیگه بله. زن طاهری بزرگ بود آقا درسه بله حالا شما میخواین تهران تشییع کنین بله بله میتونین یه ذره صبر کنین شاید جنازه اون مرحوم پیدا شه بابا من طاهری نمیشناسم طاهری با من چه رفتته داره شاید اونو کوسه خورده این شخصیت دیینه که برای من مهمه فهمید مه. درسته نمی بله نمیدونم هرجوری خوبتم سلام میدرم من نمیدونم حل دیگه بله بله حل شد چا بیت خوری الان اونا کجا هستن الان تو اتاقاشونن اتاق دایی شمالش چنده؟ اتاق چهارزد و باش سپاس کدارم به حال از زحمتتون مقلطی ما کاری رشتیم به هنگ بزنه خدا قربانه شما پایی جنازه برسه تهران دیگه نمیتونیم سرمونو بلن کنیم کار خودته منصرفش اسم دایی هلی نمیاری که بس طریق دختره کدومشون اون که با دایی آمده خیلی پس فترتی ولی اون یکی نه ها چون رسه یکیب داره چونه میزنه با من پاشه ببینم کافی شد یل داشت نگی نگن زاده به دایش میره خدا رو شک تو هیچ ربطی به نداری ببینم شما اولین بار میکیش؟ یس بعد شد خود وسط این ماجره ها چه ماجره؟ مرگمی رو این برنامه ها دیگه. آخ، آره حال دیدیه نگران نباش چه برنامه ریختم قش هم دنبال دیره دو نفری دو چ کنار سوبری آره سالاعته ببین من کار حالا میشه هواگرمه ب می کم اوبا خوک ترید گرددا میشه با داید صحبت کنیم که چی در مورد انتقال خالت به تهران نمیفهمم چی؟ میگم با داییت صحبت کن غازیش کن خالتو نبرن تهران باشه اصلا نمیفهمم تو چی میگی من یه خاله بیشتر ندارم یه دو مدام سرش توی گوشی موبایلشم <تصفح> دا با دا توی داییت با ببخشید باتریش چیش ها لابیه هتل. ونده جلیه پذیرش منتظر چی شد نشمید ونده دوزو خیلی شیرتوشیره من اصلا نمیفهمم این دختره چی داره میگه شوت. می‌گم میخوای برم با یکی دختره صحبت کنم. نه بابا. نمی‌خواد روی سر خودمو می‌چرخونید. سالن بیلیارد. دایی کنار وندا داره بیلیارد بازی می‌کنه. اما بلد نیست. آها اه، من برنامه ما به این بیخودی گفتم و انتقال دادن به شما. نه می‌خوام خرج کنم برای ترم که چی بشه. خاطر خاکی دیگه. تو حسین بیلی، شیخ صاهرو مردم خیلی دوست دارم با با من اینجا دفششه. بابا میگم. بنداد هرس میخوره خب من میگم همسرش هم بذاریم همینجا کنارش دفشه کل ده خزینه خودم تقبل میکنم ما ریساب کور زود دف میشه شما مطلعی نه مطلع نیستم اما شنیدم انسان هر جا قسمتش باشه دف میشه یعنی یه نفر تو قطار بمیره تو قطار خاکش میکنه نه دیگه هر کس رو میبرن شهر خودش اینجا کسی نداره کی براش باته بخونه اونجا باز دخترش هست دانشجوی هفته یه بار میره به سر میزنه این قشنگتره دیگه اینسانیتره دارست آقا این اینو یه دوستانباده بشه بده منظورش چوبه بیلیارده ونداد با حرس گچ رو نگه میداره براش بهتر ابتر این ن خب من تو نظر پار می‌داره عوض کنیم دیگه آه خب این قابل مذاکره است. حله برا دوکهش می‌کنم دختر سختیه خیلی چه غیره ولی حلش می‌کنم آخه برای شما خوب نیست مردم از کارتون سه در بیرن اینو من آخر درست میزنم ببین این جیریه دیگه قابل مذاکره است، دیگه بله بله کشای کن دیگه بخش جله قشنگ الان ببزن ونداد سعی میکنه به یاد بده خراب کاری میکنه تو کافی زنی بزنی بیبید خوری دلن رو کنسل بکنی اونو با هم صحبت میکنی حلش میکنی تا بین خودمون میمونم حله حل دستشک تو بایدو بیار یه چکی سه ماهه بهت میدم. سی میلیون نقد همین امروز. خب مرد اسمای من سی میلیون نقد از کجا باید بیام اینجا؟ تو بیار فاین. نصفش نقد، نصفش چکر روز. اینجوری خوبه؟ بچه‌ای رو بری؟ خب چکر روز که همون پول نقد دیگه. حالا یه کارش میکنه شمارش بگیر. گوشی رو از جیب در میاره و شماره میگه ببین من 30 تا نمی‌دم. میدی. عجب گوشیه بعدش یه دست گوشی میزنه. اول هفت تا بزن. حالا آقای دایی چه در اتاق دختران میسته؟ سلام سلام چی شده؟ کی میریم دایی خسته شدم. آ ما بخو بریم خرید؟ خیلی خب برو لباساتو بپوش، پارمیدا رو بگو بیا. پارمیدا پارمیدا کجایی پس؟ سلام بابا من فکر کردم چیکار کنیم سرم ترکید. ببین من خیلی فکر کردم. گفتم چرا ما در تو ببریم تهران ما که اونجا کسی رو نداریم اینجا دیدی این باباتاهر چقدر بهش عزت و تهرام کرد من با دی هم صحبت کردم یارو میگفت مرده ثواب کار زود دفن میشه مادر تو گل بود چرا دیر دفنش کنیم ما خاطرم که با خاطر فرقی نمیکنه آها من با این بیخودی با اجازه تو صحبت کردم گفتم که پروازو کنسل کنیم ما تو نمیبریم تهران فکر خوبیه فکر بدیه دیگه ها یلدا یلده با این فکر خوبی نیست؟ من فکر کردم ما چرا مادر پارمیدا رو ببریم تهران؟ من براش میگم باشه حالا دا. برو بذار من فکر تو خب بهش میگی؟ باشه خب ببینیم این جناب مظاهری جنت مکان کی پیدا شه اسمش مظاهریه دیگه یلده من پایینم ها پارمیده از آسانسور خارج میشه وارد لابی میشه به سمت ایمان میره سلام سلام ده بخشی یه لحظه بفرمایید برادرتون کجاست؟ نمیدونم امرتونو بفرمایید من میخواستم ببینم که دایی احیانا در مورد محل دفن مادر من با شما حرفی زده آخه نمیشنستش میترسن دیتله من یه وقت چیزی گفته باشه یه مطالبهی کرده باشه یعنی تو نمیدونی؟ چیو؟ داییتون هیچدن از ازمون پول گرفته برای چی؟ که مادرتون نبری تهران. چرا به اون پول دادی. اون کاری نیست اصلا من تصمیم گیرنده هستم. بابا دایی نیست بهش میگیم دایی اون دایی یلداسی، الا هلدا خواهر ناتنی من از پدر یکیم از مادر سهاوا. آرمیت خانوم آرمیتانا، پارمیدا. م... پا... من واقعا شرمندم. من پول شما رو پس میدم. باور کنید من اصلا از اولش بیشتر مایل بودم که مادرم تو جزیره در داشته. کسی اما نداریم تهران. راستون روستاپیشه شیخ بیشتر به این کار راغب شد. شما هم درستتر بود نیومدی با خود من حرف میزریم تا اینکه بریم با یلدا خانم قهوه بخوریم پارمیدا میره ایمان بوهد زده از جاش بلند میشه ونداد از پله ها پایین میاد ایمان با دستش اشاره میده که نزدیک بشه چی گفت؟ هیده بهت گفتم به دایی پول نده آقا به اون هیچ کار هست اون کس میگیرنده هست یه چیزایی من نسبت به تعاملیشون گفت که من سر در نمیآوردم. فقط خلاصه بگم. فر اصلا دایش نیست. آلا کی بهش میگندایی؟ آبل نگران نباش. دختره گفت پولا رو پس میاره. خوب دختره ی والا. چیکار حواست نیست؟ واسه یه کار دیگه اومدیم اینجا. اصلاً واسه منو بود آره اومدیم جیب دایره پول کنیم آره. لا با چه ریزنده استادی. ناراحتی که. این دایش چی؟ درس میده. بابا تو برگشت ما رو پاس کن. ما سالن بولینگ سیامک کنار یلدو دایی هست داره پارمیداش الو فدات بشم پارمیدا خوبی مامانو میبرم تهران تهران نه با اینجوی پای سیامک میفته این چرتیه ببریم تهران چیکارش کنیم گناه داره به خود گناه داره گناه ایند که هوش مردو آدمو برره کی داره میگه عزیزام قربونت برم کی منو من بيتخوری زن اصرام گفتم مامانو میبرم تهران تمام شما پول پس می دهیم های دابا الو دایین ناراحت دستاشو به کمر می رستوران پار میده و یلده با هم هستن ببخش کم دیگه تشریف پاوری رستوران ساعتیزی تحتیل می شه غذا نمی خوریم با اون را قایون کار داری بس بفرمیش نمیتونم چیز را کن تاکی نه غذا نمیخوریم خیلی من سلام علیکم سلام بسید بفرم بفرمایی داریم بفرم. ببخشید ببخشید آقای بیتخوری دایی یه ساعته که تلفن اتاقش جواب نمیده ولی یلدا میگه دیده رفته تو اتاقش خبری ازش داری؟ من خودم رسوندمش تو اتاق الان رفته دوری بزنه موبایلش رو بگیریم. موبایل نداره که خاص میگه موبایل نداره آخه آقای ما در جریانه ما یه جر و بحثی با هم داشتیم حالا نگرانیم که خدای ناکرده دایی داره اصلا نباید عصبانی بشه خبری چیزی ازش ندارین من من چرا بردمش بانک یه دونو چک داشت چکر رو نخت کرد بعد میخورده گشتیم و اومدیم دیگه هلده خانم هم با ما بود تشریفی هم الان میریم پیداش میکنی تشریفی هم این بار آب سردی ریختن اون سر ایمان و ونده باک چکر رو نخت کرده پولو پرید آره حتما سر همون پوله با دایش در دیگه نمیم دختر خوبی ها یافهش هم خوبه مگه نیست که تو حواست نیست ما به خاطر یه کار دیگه اومدیم اینجا آره چله یوتاقه دایی <تصفح> گفتین اسمش چی بود دلگوشا آیدل گوشا دلگوشا آی شار <تصفح> رفته باشن سونا نه بابا پرسیدم اونجا هم نبود نگران نباشین ما اینجا چیشو کیا بات نمیدا؟ ای بابا باز کن باز کن دیگه آقا خوش می‌مرا باز کن آقا من داد و ایمان بهشون میرسن وارد خیلی خوب حالا دونه دونه <تصفيق> با یخچا نمیگردی؟ فکره نوش آن نیستش در هم نیست بله چکات کرد اتاق تخلیه است شما که الان پایین گفتیم اتاق تصویه نشده که چکات در فراره کرده از این مورده خیلی زیاد داشتی حالا شما از کجا میدونم از اون کار را کرده آقا همین نمی ست تماس تماسیه فیمینی سرویسش دوباره شارج بشه ولی الان نگه نمی‌تونه از اینجا فرار کنه. منال خروجش میکنه بکن آقا، بکن. شما قبول می‌کنین تمام حزینش فردا کنه؟ آقا من که آخه مسئله اینه که تمام مدارک مسئله اینه که ایشون تمام پول ورجشت فرار کرده. دستش کرده. یعنی چیو؟ ای بابا. تا توستر جای من درست صحبت کنید. خودم باور کنید اصلا لازم نیست پولا صحبت کنید ها. آقا اصلا شما به چه حقی به ما تهمت می‌زنید؟ آقای محترمی، شما پیدا نمی‌کنید، دارید دخالت می‌کنید. خودت گناهه. شما چه بهش می‌دونید؟ تفسیر می‌کنی یا نه؟ آقا برو، برو من خرجش کنم، برو شما. منم پولو به شما پس میدم. نه در نظر بگیرید. خانم پارمیدا، من اصلا قصد جسارت نداشتم. منظور من اصلا الان مسئله اینه که شناسنامه مادر من و تمام مدارک ترخیص جسد دست اونه. او اوه. خب آقای فرگا، برید، این کجا شنبه است؟ سه شنبه خب صبر کنید. اولین پرواز هشتر خیالتون راحت باشه. تا اون موقع دقیقاً چهار ساعت فقط. اوه. وقت خب کشتی نره. دقیقا ببینم دایی شما اینجوری آدمی هست؟ اینجوری آدمی که با کشتی بره؟ تو در بره. اتفاقاً آدمیه که در میره متأسفانه. به به. تو رو هشتر می‌بریم. همه از اتاق خارج میشن. سوار ون هستن. جلوی پایانه مسافرتی دریایی توقف میکنه. شیخ، باشی. بابا رحم کن. چطوری؟ کسمش تو آخرین کشتیونه که حرکت کرده اینا. اون این نرا باید میدونی که. میدونم نی نیرو انتظامی زنگ زد ولی موقعی که زنگ زد که این ممنون خروجه 10 قبلش کشتی حرکت کرده. یه بدبخت کردم، اینا مدارک مهمی هم رها شد. چجوری بررش گذارم؟ می‌خوام بیسیم بزنم واسه دریا بیادش کنم تو. خب زودتر با خبر بده. حالا چقدر جای تا بندر عباس؟ بندر عباس نمی‌رم، میره چارک. یه ساعتم راه. خب با قویه گریم دنبالش. می‌شه؟ اوه پس بریم دیگه. از شاهین به نوید دریا. از شاهین به نوید دریا. رفتیم دریا بگوشم با کاپیتان صحبت. کاپیتان خسته نباشین در جریان باشین یه مسافر ممنوع خروج است الان تو شناور شماست به اسم آقای دلگوشاد. دلگوشا. آقای دلگوشاد. دلگوشا. گوشا، گوشا. گوشا، گوشا. گوشا، گوشا. میزنمون عاجل مشکل گوشا. عايزوشا گوشا چیکار کنم؟ بذنش توپ. اگه شالکانی بهت میرسه. شده شما بیا. دور موتور کم کن شکان ده به راز ده به دور موتور 300 کم همه کی سوار قایق میشه. عجله داریمم میتونم بفرمایید بیشتر از 4 نفر ظرفیت رو نمیتونم بیشتر از 4 نفر سوار کنم ای بابا هر خب بس بریم سریع تا بریم بریم شماش که منو یادت نره برگه تخصیص جسد رو بگیری. تو چی نشستی؟ منو قفل کردی؟ خوشو خوشو برو بیدو. من پیاده شید. ای بابا من گفتم من میام خطرنا که پیادشین بهتر دیمارا دیگه سیامک و یه دا پیاده میشن پار میده سوار میشه ایمانم سوار میشه نمیان کجا داری میری من دارم میرم دیگه مگه نشک میدی گفت خطرنا که این چهتیه ببین ایجا... خرخودش دارم میرم ما یا کلر رو زنده کنم ببین آخواستش من ببین آخواستش من ببین آقا بجان دیر شد بجان دست در نکن فقط بجان بفهم بفهم توی قایق با قایقران بیتخوری و یه معمور و پارمیداف و ایمان هستن از ساحل فاصله میگیرن کشتی پسر جوونی داره برای مسافر را میخونه دایی هم بین مسافران نشسته و لذت میدن روزی که باد و مودا روز زندگی روزای رفت رفت هم روما از بردگی برسیم عمون تشکر خب دوستم تو دو جمعمون امروز عزیزی رو داریم که یه آهنگ قشنگ بتونه برام بخونه ما به جایزه بدیم دایی دستشو بالا میبره شما بفرمایید خواهش می کنم با دست قشنگ افتخارش بزنیم آفرین آفرین خیلی مرسی شما خیلی خوش اومدید سلام علیکم سلام خودتون رو برای دوستان معرفی کنی دلگوشو هستم افتخار آگه دلگوشار نه گوشار گوشار خیلی خوش اومدید خب برای ما چه آهنگی آماده کردین برای خوندن با عذر من چون چند روز پیش یکی از اقواممون متاسفانه فوت شدن ما عزادار هستیم خیلی ممنونم به افتخارشون اول یک کف مرتب بزنین ممنونم خیلی ممنونم اگه اجازه بدین من موسیقی نخونم پس الان میخواید چی کار بکنید آه. برای ما اون میتونم یه شیرین کاری انجام بدم مثلا یه کار شعبده بازی اگه دوست داشته باشی به وحش شعبده بازی دست قشنگ بزنید افتخارشون با یه بکشی نزدیک میشه ملوانی پلهای کشتی رو برای ورود سرنشینان قایق آماده می‌کنه. یلا ببخشید ببخشید. یکی از دوستان داوطلب بشه بیاد اینجا. به خانمی اشاره می‌کنه. بله شما تشریف بیارید. خانم بلند می‌شه و جلو میاد. خیلی خوش آمدید. مرسی ممنون. ببخشید شما کاغذی مدرک چیزی همراهتون هست؟ من خواستم اگه بشه. تقدیم کنم یک شعبده بازیه. بله این بلیت اپه ماست. بله. امشب از بندر عباس برای همین خوبه این رو لطفا برای من نگه داری خب دوستان توجه کنید این اه... یه شعبت بازیه من این بلیت هواپیما این خانمو جلوی چشمای شما به چهار قسمت تقسیم میکنم و بعد کاملا سالمش میکنم و به شکل اول برمیگردینم توجه کنید بلیتو از وسط پاره میکنه دو قسمتم روی هم میگذار و باز پاره میکنه حالا همه رو توی دستش قایه میکنه. به سمت قای فوت میکنه. درست؟ خب حالا توجه کنید با دقت. سرنشینان قایق دارن سوار کشتی میشن. الان پولش کجا؟ کجا؟ بانه اینجاست. بذار اولیشون برن بعد شما. وقت زیاده. عجله نکن. بفر، بفر. مراقبت باش. خورده‌های کاغذ از بین دستای دایی میریزه. سعی میکنه دوباره با فوت کردن خورده‌های بلیتو به هم چسب بچسبونه. فکر میکنم اینه چما زمینی نمیتونی بره نه این پکرم اینجا روتوبت هوا نمیذاره این بچسب یعنی چی نمیذاره این بچسبه؟ جون مادرم همیشه میشده نمی... یعنی چی نمیشه؟ من امشب پرواز داشتم باید میرفتم تهران من درستش میگم یه موسیقی شاد لطفا بزنی ایمان وارد میشه درون میبنده دایی منو میبینه و فرار میکنه. باشد. باشه باشد. نه کشتی بسنا. باشد. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. ای بابا به دنبالش میره روی سقف. حالا میگیرتش. متعادلش از دست میدو دایم میفته توی آ اتاق هتل دایی توی تخت خابیده دکتر فشارشو میگیره آ فشارمامله رو چنده؟ دیوارش فاضل 12 تا دكتر آ یه از این درده بخور تا صد خوب بشی شما دکترشی؟ بله. نه. بله. نه. نه ما شدی. از وقت آن نشد فشارش بالا. نه دیگه. آقای دکتر، تبعخت خلاص. میگم پول از دستش رفته، فشار رفته بالا. چرا قفه نمی‌زیش؟ چه ذعریه می‌میره. نه مرده که. کوس قحش کرده. خاصنی هستی؟ دوست دارم. هم ازت. رستوران سنتی. ایمان و وندت به سمت تخت بیدخوری و سیامک و, دایی و بابا، میرن. <مزن> سلام کن. سلام سلام دایی دایی دایی اوه. یه بهنظرم میخدم خر ها خودی میره و بر می ببخشید تو رو خ یه ذره دیگه به خاطر ما گفتی نزنن ما همه از آدار هستیم دیگه خب معلو دیگه یه اینجا هستن بادم تفریق او چه گن کرد به او کارش رو بکنه آ آره کردم واری کردم آره یعنی اشکالی نداره؟ نه نه بگو بزنه. آقا مطلع؟ نداره بغوزه. حس بزن از خرقه بزن. وای وای. رویی در حالی که دو لپی غذا میخوره رو تکون میده. ایمان نگاش میکنه. ونداد خندش میگیره. آقا گفتین بزنن ها ولی ندیدین جوری ما عزاداریم. زدن و نزدن اونها خیلی راست عزاداری ما نداره. باور نکنیم ما خودمون هم احتیاج داریم نه لحظه که واقعا استیل بود. دوباره زنه به تخت سینه ای ایمان و و بیدخوری به هم نگاه میکنن میخندن دریا آبی و آروم و لایتنوهیه لنجی کنار قایقی ایستاده مردان شیخ تاهر میبینم یک چیزی دریا برگ میزند میرنگل می میبینن قایق اوناست ولی خالی و خودشون نیست زنده است. شیخ به خوشحال میشه پسری وارد قایق میشه اینا به فریدون آب میدن بعدش هر کاری میکنن قایق روشن نمیشه بخش خودوجه میشن که قایق بنزین تموم کرده الان بچه ها میگن احتمالا اینا گم شدن تو این دریا مرگم خب بنزین نداشتن دیگه همین میشه خب اینا بنزین تموم کردن برای چی رفتن بیرون از قایق نمیدونم بود اینا فقط این فریدون میدونه به اونم زبانشون نداره ایمانو کاربیدار سوار دو شبه دو نفره توی یه جزیره هر کسی میمکیش من دو ه پیش اینجا بودم اون تحصیل چی بود؟ سه روزه ض بود آره آره, آره تو تو میمد اینجا مابا رو می رو بودی مااس خبر نداشتمیه گفتم به انتقالی بگیرم دانشگاه اون پیش ممانم خیلی سرزخت مخالفت که نمیدونستم ازدواج کرده فکر تن موش این پشت سرشونی خیلی از این پس سرای معرو مذا رو خوب کارشونو بلا برن خوب فعالیت میکن داری. مظاهری نه تاهری بده منوز محرومی زنده باشه یا مرده که مرحوم میچاسمونی بهش یعنی عشقیشین دلخور نیستی؟ نه باب اصلا جوونه دیگه خامه عشقا نداره دوستش داره اینجا کجا تو شرخیه جاره همین جلوتر. تو سفر آره آره از این دو تا. هی بابا دو تا سواری چیه؟ من خودم می‌برمتون ون سواری کنار ساحل. چطوره؟ میشه من لیام. چرا؟ اول ما برسیم این هتل میخوام استراحت با کمالمه؟ این کار شرکتشون چی بود؟ شرکت بازرگانی بود. این واردات و صادرات این چیزه آه میدونم، میدونم میخوام من استفاده کنم. نه من. نگفت می‌خوام مدیر بخش سیلو دیالو بابا تو هم بودی دیگه مدیر بخش مطالبات معلقه خوش به حاله آره بابا شماره شو به داده بود گمش کردم بابا ازش میگیرم بای با آره تو که نداری نه دستا درد نکنه پس که خودم بشت زنگ زده ما بابا فرد بده دیگه جش سیامک گوشیشو برمیداره رقصی شدم بعد ساهل سیامک خودشو زیر شن مدفون کرده فقط سرش بیرونه. <تصفح> فقط اروی سینه و پهام رد شد اروی سیکم هم رد نشد اطمئنی؟ اروی بیا بیا با سرعت بیا یلده پشت فرمونه ون نشسته حرکت میکنه از روی پاهای سیامک رد میشه و جلوتر میسته سیامک از توی شن بیرون میاد پاهایی که اونجا بود مصنوعیه تو خیلی بامزده ای هوتیل با تلفن حرف میزنه بله آخه اینشالله همسرشون هم پیدا شده هم قراره هم اینجا خاکش میکنم بله اینجا خبر نداشتی؟ زن داشتین اینجا زندگی داشته کجایی کارین شما بله بله بله این بیان با همه اطلاع بدیم نفسم به مادر بزاره بیا اینجا هوا خوبه هم ها سیاحتی میشه خدا حافظ پروانه خانم خیاری که نمک زده میخوره منه مندادی تو پول بر من پشت میگیری. صاح آیا بیدخوری چی شد یه دفعه بابای من مامان پارمیدا ازدواج مالا من در جریان جوزیات ماجرا نیستم خدا شایده حالا یه حف عشق آمد و خانمان در جریانی که چون خود تالا عاشق نشدی؟ نه؟ ببین یک خواهی جان چیان؟ یه سوال مخوام ازت بپرسم سال جواب جوابا چون تجربت زیاده من تو به اشت در یک نگاه متقدی آره بابا آره اتفاق تو وقت هم صرف جوری میشه یه <تصفيق> <تصفيق> کیه؟ آه. بله سلام حالا من الان کیشم آره الان ایمانم اینجا از چیزور مگه هر با میخوانم اتفاق یوفر توی شرکت چی؟ نه گوش کنیم ببین پانشین بیاین اینجا فرمه کنو فهمیدیم چی گفتم پانشین بیاییم اینجا چی شد آقا من داد کاری چیزیه بگی من در خدمت هستم آ. با نگرانی شماره میگی آلا ایما الان کجایی تو کجا آه آه دیدمت دکی بله سریع تشریف اینجا ایمان و پارمیدا با دوچرخ نزدیک میشن چی شده؟ برای بدینم اینجا همه مارو میشنسم وقت رفتید دوچرخه سواری؟ با دختر مردم حالش گرفته بود عزادار بود بردمش بیرون روحیش عبر چیز بخورت بوشت کن تو به شرکت زنی زدی کسی چیزی گفتی؟ نه من دو پروانه از شرکت زنی زد خب خبر داشت بیا حالا پشت خاج از همه چی خبر داره خب میگی یعنی چی بهش گفته نمی دونم من اگه مادر بزرگ رو بفهمه درجا سخته کرده ها نباید بزنیم بفهمه میگی اون وقت دو تا بزرگ توی هفته خیر قابل تحمل گوش کن الان زنگ میزنم احسان میگم ببرارش دماوند نگران نباش فرودگاه هواپیما از آسمون پایین میاد آرون روی باند فرودگاه میشی. ایمان و ونداد از پله های هوتل پایین میان جمعیت زیادی با چمدون توی لابی نشستن ایمان اینجا چی کار میکنن؟ سلام سلام باشین باشین دارم و من دارم تسکیت باشد ونداد ایمان دیدنیه نمیدونن با این آدم چیکار چی کار کنن تقریبا عزا گرفتم. خیلی خوش اومدید. سلام علیکم. سلام خیلی خوش اومدید. سلام خوش متاسفانه زنگ زدم. بعد باشه. شما چه کارا شغل؟ عروسه. خیلی خوش خود من این دنیا خیلی خوشم. بی اومد. خیلی خوش شما بعد فردونه خانم واسه. بله با اجازه. خیلی هم عالی. پرواز خوب بود انشالله ایه عالی فاتله خوبه این ردیفه همه چش ردیفه آی آی <تصفح> الفاته <تصفح> حالا چی به شما گفته پدر ما فوت کرده لا. این ها چیه؟ آها راست میگه شاد اصلا نمرده باشم هفته نیم من به شما نگفتم که به اون شرکت به شرکت اقرب میمونه خودت هیچی کل فامیلم به زحمت هم انداختی اینجا ای بابا اینچه حرفی آقا به سرخول مهندس من که بقی منشی شما دوتا نیستم دختر خانتونم فامیل پدر این مغزا بخورم تازه بخواستم با هم بزرگر. پیدا کنم هر چی زنگ زدم پیداش شنن گردم پیدا نه بله بعد که من تم این گرفتم مستم همه پرگشتشم معلوم نگردم جون نمیدونه ازدان پیگره شوار قدم که پیدا میشه ببرمایی چون اگه تلت قاسی کارو پولیشو به من میدیه چون پلتون زنگی زن مایی بیدخوری بیاد از کارشون بده شبی. من سیامک جلوی هتل میرسه پروانه و بقیه یک فامیل پیاده میشه بفرم بفرم بیادش بفرم بفرم بفرم, بفرم. اینجا کسیم داره؟ خوبه بله داره بله اینجا حالیه بفرم کنی بفرم بفهمید تا چی بگی. شما چرا خیلی خوب قابو نم داره. شما که برای سیاحت نیومدید برای همدردی اومدید. همون برای عزیزم برای همدردی چون اومدیم عزاداری به حالمون خوب نیست. یه اتاق رو به دریا میخواین. درمون بذاریم رو بالش همجوری های های گریه. داره اون امکانات داره. هستش. بالشم هم هست همه هست. ستاره, ستاره هاش؟ ستاره اش توئه. این اینجا میزنن؟ حالا این ناز دیگه. ببخشید. بفهمید تو بفهمید. خونه حالا همه چیز جفت جوره میشه. شما تشریف تو لی بفرما ب ب بفرما ببخشید اگه در خود نیست خیلی خوش اومدی بفرمایید تو <تصحیح> کی شدم تو جتسکی توی دریا حرکت میکنه به سمت ساحل میان تمام فامی توی ساحل توی آا چیغ نشستن و براشون دسته کنیدمما اینجا سفید در حالی که تمامی فامیل سوار شدن حرکت میکنه دایی داره به پروانه ماهیای زیر آبا نشون میده پروانه میخنده همه مناظر زیر رو به هم نشون میدن عکس میگیرن دستای تو حالا به دیدن دولفینا رفتم برای رقص و نمایش دلفینا دست میزنه. دایی توی یه توپ بزرگ شفاق توی آب داره حرکت میکنه پروانه توی ساحل داره نگاش میکنه و میخنده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 بریم با جتی و قایق آکواریومی دنبال جسد‌های تاهری بگردیم. بگیریم. خسته نباشی عمو جون، خسته نباشی. یه زحمتی بکشین، خب؟ بریم این فودام مامان باباتون بگیریم. به سلام. مامان گفت که مثلا از عمو رو هم اون‌ها بگیریم. بعد گفتم ما سوجی تستش کنیم. اینو پولش رو بده. اصلا نه، بگین دنبال جسد برید. تو چه شده؟ چانچ چک پول بهشون میده این فرادری گر از این به بعد تو دیگه همه این یه بمان این خودکاری بکنی. آقا اصلا نمیخواد دنبال جنازه آقای تایری بگردین باشه؟ چهار. حالا بالای جنازه گیری هتلشون. بله، و تاکسی مالیم و تاکسی مارونه. همونجا نخوندی تو تاکسی از امروز ونداد بگیری نه؟ این دیگه من خانمین باشتنی شو کرد. ونداد دو ایمان از هتل خارج میشن، سوار تاکسی میشن. گشت پایین. آقا موو به کش پایین. میت خوریه. آقا باباتون پیدا شده. واقعاً؟ جنازه‌ش؟ جنازه‌اش ببخشید من بعدجوری گفتم. آره. کجا پیدا شده؟ حالا گفتن یه جنازه تو ساحل جزیره هندورابی پیدا شده. هندورابی چقدر راهه؟ از اینجا با قایقتون رو نزدیک یه ساعت و نیم راهه. اونایی هم که دیدنش گفتن حدوداً 70 سالشه قطعا بابای شماست. الان باید استعفا به اتفاق بریم شناسایی کنیم که اگه خودش رو نشون بدین بیاریمش. اون رو دیگه. نه نه نه نه. نه. فقط شما باید دقت کنید یکیتون تشریف بیارید چون این کاهقاز از پنج داره داره این مامورای چیز متوفیات کیش هم ما میاد دیگه جا نداریم ما میریم ورش می‌داریم میاریمش اوه او فقط حواستون باشه به هیچ کدوم از این فوبیلات خبرنما نদিনات اینا میان اینجا شلوغش میکنن فقط اونجا همه چی هماهنگ نریم علاف ما تماس گرفتیم اونجا همه چیز ردی شده خلاص شما جنازه رو شناسایی کنید سری برگردید ووووووچی باد چی میاد؟ اوه چی میاد؟ باید آقا, باید آقا بسه؟ ببیش. بسه؟ ببیش. ده... این رو با دست بهی بریم برشا همهصف آقا من واقعا از همهتون تشکر میکنم تشریف آوردید، خیلی لذت کردید ولی واقعا کتون می بینید هوا گرم قایق هم ظرفیت داریره بفرماید هتل استراحت میکنیم ما خودمون تماس می گیریم نه نه پسر حالتون ما هیچ ک برای استراحت یمیم قربونه برمقایتیم یه دینه قایق اضافه بگیر، همه با هم میری قایق خیلی گرونه بعدشم به خدا اصلا لازم نیست شما آبیم آبا منو پروانه اوندا یه این قاایق اونا گریم قوله شم سیامات میره دیگه سیامات غلط کرد نه او ما با صحبت کن آقا چاش ببخشید میخوام بدونم شما اصلا چیکاره این خونه بادیه ای؟ تو برای چی میخای ها من ای اینجا چیکارم؟ علی خدا اینجا ببینم ایمان اولایی که تو حالا پرونده پرونده این یکی رو دیگه نمیذارم باش اینجوری رفتار کنی خانوم شما از الان خارج بشید سلام من چی خارج بشم بابا تو شرکت تمو زمینه من دستینه نه نه شما اصلا اجازه نیست اتفاقا به خاطر حس همدریتون پاداش هم میگیرین. بنداجون تو همیشه طرف حق میگیری. ممنون اکبر. خب دمت خانم آقا واقعا لازم نیست اشیک بیارین. این قایقم جان نداره خودتون دارید میبینین. ببین ما دو فقط یه نفرمون داره میمیره. آخ خانم گفتش که قایقه خودمون میگیریم میریم میگیریم. آقا بهتره خانم بابا لازم نیست که بهتون میگیم نه دیگه. هی بابا اگه گیری افتادیم ها شما انگار اومدی گرده. اومدیم گرده شو خجالت نکشی. بست ایم کنم اشتر اشتر اونو بیگردیش برای احترام میگردار اخوه بچه احترام شو کرد ای بای شوار حرف دارم این من اگه جای آقا باشم. آقا من خواهش میکنم بس نکنین دیگه تمامش کنین خوب خواهش میکنم خواهش نکن. م... یک دقیقه دیگه همین بی احترامی رو و اینجا نمیمونه. ای بابا تمومش پروانه جان ازت خواهش میکنم دیگه. اه. عمیجان آقا و هی خاکش من از خاکی خیلی بی خیلی نام خیلی شما واقعا خارجی اومدین شما هم خیلی نام می آقا دیر شد بریم دیگه فقط شما یکی دو ت بریم به اتفاق پاره می دخانیم برویم پشت اقتدار اجازه ده این ما رو دیگر جزیره بیایید برویم دیگه هم ازش شما برو گفت به اتفاق پاره می دخانیم تو برایش پسش چونه ولی بر من برای من ندستش آداب را آقا, آقا. آقا. آقا خود را رنگ کن شوی لشکر کشیشو همیگی با مامورا و سیما همه فامیل با جلیقه نجات کنار قایق‌ها ایستادن. ایمان و بقیه میرن. بالاخره دو تا قایق راهی میشن. ونداد رفتنشون رو نگاه می‌کنه. تاکسی ونداد و پارمیدا جلوی شیخ باریش سفید و بلند و همراهش توقف می‌کنه. چی شد؟ باز چرا دیر کردی؟ جنازه پدره یعنی؟ خدا رو شک پدر رو پیدا کردن. رفته هندورابی رفتم بیارنش پایزه چی؟ اندورابی اندورابی او بیمار چرا اندورابی رفته یعنی لبا جنازه نتونست خودش بری تهران دیگه اسمایل. دو تو تاکوزفن باید برای چلوی جنازه بیاری که چی؟ سر ببوریم و بعدش نبرای خورشت فردای مهمانه اونا رحمه به چین همجور به چرا نرفیم جنازه مادرمو؟ میگیم بشتگه توی یه تراز خونه شیفتاهه همه گی ن حالا اگه شما اجازه بدید ما همسرشم کنارش دف بکنیم چی داره یعنی که اینا با هم بودن؟ بله دیگه با اجازه تو الله اکبر اینه علیله و اینه علی راجو ایشون هم دخترشون هستن خوبه چیما ای وقت زن شما بله میگم زن توی؟ نه ها نه ایشون دختر همون خب بگیرش خوبه که بله به خدا اون بنده خدا آرفتند مردن تمام شد تو امین بگیر این به اون در خدا من مقدتون میکنم به خدا کاری نداره بله در ولی حالا بعدم اگه اجازه بدید دراجه به در را اینا صبرت میکنه اسمایل منه تو تقابل میکنی باشه چشم گسفن چیشه بدی چه میگه باشی ببخشید من برای مهیت مرد دو تا گوزفند و برای زن یک دو تا تا به تا بمیره اون وقت شاید یه بوزه اینا برحال قوانین خودش ما دیگه در هر صورت اگر کس دیگه هم هست که میخواد بیاد اینجا دفن بشه والا ما قبرستان فراخی داریم هر دو یک به سایل جزیره هندورابی میرسن مرد دیگه ای دقیقا که انگار مثل سیبیه که با شیخ تاهر کردن با دشتاشه سفید و قرمز و پیراهن بلند کرم جلش رو میستد وهمیده ما من جلیه دون اکس از اون تیبونه هم بگیر بیخوادی بیخوادی با بیتخوری هستن با حالا میدی این هم شیخ تاهر نید کدوم کدوم میگم بگیر شیخ قادرشون چی چی بابا اون فقط شوالش به همه گستیگه مالو اون آبی بود مالو این قرمز آبا دو تا داشت دو قلوان اصلا اختلاف شنافتر همین قرمزده آبا آبی. اونه خودم خودم, خودم اون آلو عالی... بسکت ولد کبیرش کیه بسرش منم بیا قیافت بیا جلو بیا جلو من نباید ستر قادری رو بشناسم نه ده ده. ای بابا ما آمدیم اینجا دنبال جنزه تاهری اینجا به باباتو میگفتن قادری فه هرزم یه اسموشت با منه ما مثل تو تا برادر بودیم برایم مثل دو تا رفیش. یک روح در دو بدن اونجور بودیم ما با هم نوح سال پیش من براش کارت ملی گرفتم آه یادم هم کارت بنزین هم براش گرفتم همیشه میامد پیشم هم. همین چند روز پیش این درابی بود اونجا دیگه زن نداشت ها اسکت یا اهل هوایی دوازده قدم برو اقعب یعنی دو و 15 برو دو فونزه را کجا بردید؟ اخوهی میگفت نو فونزه قانون فیفرم عوض کردی؟ قانون همونه ولی اینجا آفتاب دیر تر میکنه بودو برو قانون خونم باییز یک دو سی ببخشید آقای شیخ من چند قدم باید برم اقع؟ شما هفت دو قدم بیا جلوتر شیخ اینه که آفتابی میسره به پروانه نگاه می‌کنه. دردونه کارش کردی تو؟ دیروز بچه‌ها پیداش کردن، سالمو رو گنده است. بیشترم هم شام خوردین. سی امکی فریدون کی همه راجبش حرف می‌زنن؟ خود ببینمش. میدمش مال خوده. سی چی رو میدم بهش مال خودش؟ به همین سادگی بریدون مال اندورابی ها ما. ثناوات شیخ، من فریدون رو به کسی میدم آخه. خاص میگی؟ بله. ببینم میگه تاری یا قاضی. فریدون همون پرنده‌ای توی قفسه. راستی میگه آخه الکی داره میگه کجا میگی آخه چی داری میگی بابا یه بند داریم که قادری سن قادری از زبونش نمیفته بگه یه. تاری من تو راه میکشم آقا این فریدونو ولش کن شیخ طاهر گفته جنازه طاهری باید بره کیش طاهری میگه سبب سر قادری اگر ببریدش کیش من کیچ رو سر شیخ طاهر خراب می کنم پاش باش, باش. فهمید جنازه اینجا دفن میشه مخارجش می یعنی با من چاش شما یه لاستیکی پی یه, یه لاستیکی شما تشریف ببین تو یکی کشته نشده این موضوع رو قبول کن بزاره. این یه کاریش این یارو دیوانه است از حرفم فشن نمیگرفت ولی شماها فامیل شما همه بده فهمیدید نکنه یه ذره هم منطقی باشین دیگه بابا این آقای شیخ بالاخره یه آدم دنیا دیده یا یه حرف میزنه رو حساب کتاب دیگه بله چون چه بابا خوبی خوبیت نداره از این ور به اون ور خودم مردم الاخان که هر می بگو باشه خلاص نمیدونم بابا هرجور خودتون سلام زم. بای کلا جرا شیخ ما اطاعت هم می شد استرافل جنازه را چی میکنیم؟ از وقت چین یعنی تو تا گوزفند بکش مگر من نگفتم که داره باید گیش دفن بشه و یا گیش دفن میشه به تو چی کار میکنی تو؟ خب من که اونجا نبودم که اینا اونجا بودن گفتن که شیخ قادر اجازه نداده جنازه رو ببینه. نه نداد نداد میده اندو رابیره من روی سرش خراب میکنم شیخ شن... از پله های تراس پایین میاد آزیز من فریدون فریدونه یا بیبی یا زیزی فتیک فتیک فتیک فریدون منه اون هست ما چانه منه من آقای خلاص همه یت نبايد روی زمین بمون اونجا همون جا خاکش کنيد اونم برادر منه اونجا بخاک ایرانه ماشین قرمز اسپورتی به تاکسی بنداده ایمان نزدیک میشه زن جوون شیکی از ماشین پیاده میشه سلام سلام ببخشید من خیلی شما رو معتل کردم شرمنده خیلیش میکنم مارفی میکنم خانوم تاجدینی وکیل پدر ایمان برادر من برای من دیا داره که همیجا به شما تصدیت بگم خدا انشاءالله به شما صبر و شکیبایی بده به حال مرگ است که به همه ایمان نزدیکه. درست اومدیم؟ بله همینجاست دو فهمه دو فهمه نشونده تلفنی عرض کردم خدمتون دیگه مرحوم پدر شما بام زیادی از بانگ گرفته بودن برای این هتل. حالا دو راه داریم اگر شما بخواین در واقع به ساخت این هتل ادامه بدین من میتونم بامو به شرکت منتقل کنم اگر که نه سریعا باید ساخت به بام تحبیل بدین و تصویر بخواهیم 15 طبقه است در 27 هزار متر برنای بنا. فوق دیگه شک نکنید اگرم بخواین قرار با پیمانکار براتون ردیف میکنم دیگه حلی دیگه دستید شما آقای بنداد وامش رو تصفیه کردین دیگه نه؟ اون با ما که دو سال پیش گرفته بودیم تصفیه شده اگه تصفیه کردین میتونیم دیگه منتقل کنیم شرکتتون با امیتون جالبه مثل که شما از همه چیز خونمادهی ما با خبری نه؟ فقط خانم تواجهدینی؟ شما نباید به ما میگفتین که پدرمون زندست رو داره اینجا زندگی میکنه آخه این درسته؟ من واقعا دستور نداشتم اطلاع بدم به خدا حال و حال موقعم ازدواج کرده بودن بعد از فوت مرحوم مادر شما کمی حالت پیدار. پدر تهران هم می اومد نه دیگه آسامون 9 سال پیش دیگه هیچ وقت نرفتن تهران رو میخواستن بگوشن ولی من یادمه که شما بودین که خیلی اصرار داشتین که پدر من کشته شده که دست از سرش بردارن دیگه شایعه انداختیم کشته شده دیگه کلی هم اومدی تسلیت روز ما خونه بیت بگاه چه دیگه به هونه می گرفت چرا خب این پذیره ای نمی کنید بگاه دیگه شما سهبتو نمی کنید بچه دسته مسته شدیده ندیم اون پنجامه هست بازی کنید خوب چه خبر خب آقای متوایی عکس ساختمون هتل رو دیدین؟ خدافظو. به نظر من که بالای خوبه، موقعیت خیلی خوبی هم هست. حالا اگر خودشون دوست داشته باشن، من همین هفته می‌تونم قرار فرما کارو ترتیب بدم. حالا دیگه تصمیم بگیرید. به نظر منم اگه اونجا رو ادامه بدین خیلی خوب چون مروون طاهری بنده خدا خیلی واسه اونجا زحمت کشید. خیلی هم دوستش اونجا هست. می‌کنی؟ بله بله، الان میام خدمت شما بگم. خواهش میکنم. لازم تر نکنین، بچه‌هامو صدا بدم تو. فرید، فرید مامی. آقای تاهری دقیقاً یازده سال پیش با رئیس سازمان زمین شهری شهرستان مهربان هست اختلاف پیدا کردن و بعد اونها نامرده کردن و خلاصه تله گذاشتن رو دستمورد نکنه و, دست در و ایشونو درگیر خرید یه سری زمینای واقعی اطراف دماوند کردن بعد به ایشون اتهام تصرف اموال عمومی زدن توی دادگاه و رفتن شهادت دروغ دادن تا جایی که کارو به جایی رسوندن که ایشون زندانی شدن یک سال تمام طول کشید تونستم پدر رو از زندگی نگیارم تو اون سالا من و ایمان هیچ کدومون ایران نبودیم بلکب شنیدیم که پدر زخمی شده و کارش به بیمارستان کشیده و گرفت بله. یه میخواستم بکشنش بر... برد بخت بر... یه سری بله, بله یه سری آدم که پاشونگی بود واقعا نگران مدارکی بودن که ما قرار بود رو کنیم دیگه یعنی در جریان قضیه حتی آقای طایل رو تهدید کردن زخمی شد اصلا در و داغم شده بود میگم بایم بایم بایم بایم رو میکنه؟ نه نه نه این سیامک ای سیامک ای من بعدا تماس مگیم بفهمشون خلاصه صحنه سازی کردیم من یه سری مستندات جور کردم و تاکید کردم که پدر کشته شده من باور کردیم یعنی همه باور کرده. جاز مادر تو هیچ وقت بابر نکرد همیشون گفت پدرتون لدم زلنگیه اتما از خودشو یه جایی کرده. راستی شما میدونستین هم برادرشونه؟ من دود ایمان با خالتی ناباورانه و غریب به هم دیگه نگاه میکنه. بله، همین سیامک خودمون. یه زن ابزه شوخی میکنم خب شاید بشه گفت شوخی هم نیست چون این سیامک نوجوون که بود، تو همون کوچه‌خوابون آواره بود، همجوری میچرخی. پدر شما دستشو گرفت و بلند بزرگش کرد. حتّی به نام خودش فرش شناسامه گرفت. حالا یه جوری میشه که برادر شماست. به حال تبریک میگه. سیامک اون کوچولویی نره. کنفامیت وی فروخته است. در این چه می دناره تا همینه؟ اول مباني چه حرفیه؟ هشتو و پنج. پنج. پنج. پنج. پنج. پنج. پنج. پنج. پنج. پنج. پنج. بنده جان، آ شما 835 هزار تومان اضافه باره بچا. 835 هزار تومان نیست می‌خوام تغییر. نه بابا خان <تصفح> <تصفح> <بخارشت تصفح> با چی چی چته؟ مگه چی خریدن اینا؟ چی مترم بدی یه مترم بشی. چی گرفت آخر؟ من خودم حساب کنم. برسون. ولاسا نمیخواد شما رسید بکنید تو جیبم. حالا می‌پرسی واسه من؟ پس آقای بیت‌کری من مامانمو به شما سپردم. خیالتون راحت من یه سنگ قبر درجه 1 ام سفارش دادم. دیگه من سفارش نکنم. بله حتما من هر هفته خودم بهش سر می‌زنم بمونم. ولی ولی میگن که اینجایین هند می‌مونه. حالا یعنی چی؟ یعنی که خاکش گیرایی داری یعنی مثلا یه جوریه که وقتی بری دوباره برمیگردی. ولی هارمونا گیره می‌کنه. اینا کجا بعد پس نمه؟ شما تشریف بیار آقا. جان مشخصه. بله. آره یه دوتا خوبه خوبشو به ما بدی بعد ما بریم من بغل کی آقا؟ تو بغل منی. نه نه نه من بغل اینم خدمت شما آقای دلگشاد. دست گوشا گوشا یه حال من آره فقط نیفتی با این درم خدمت همه که قولشو داده بودی برای منم چیست خدمت شما خرج داره ها بخشید یه جنو پیلیت بدیم برای ایشون که کنارش خانم باشه چی میکشن از دست توسیامن بهمتون نبینم بخشید بخشید بخشید دو تا بقل همه بود که قول دادی برای من هر چیست بله برای؟ خودش اومد گرفت منداد خوشحال میشه چمدونش رو بر میداره و به سمت پار میره دو سال بعد تاکسی سفیدی جلوی هتل متوقف میشه پروانه و دایی پیاده میشه آخوان دوباره آدولفنه آخوه بعد زود بریم ببینیم مار. چه ده خانجنگ شده نره آتر <تصفيق> پرمیده دیگه سیامک توی پذیرش با شلوار نشسته اوه. واو باشی کلاری آخر باشی کلاری آخر باشی کلاری آخر آخه سیامک خوش میگذره ماریخ آره دیگه زواجو محفقه دیگه برهان به پای هم پیر بشی برای تفریح اومدین کی نه نه برای زایمان پروان خانومه تو آب دولفینا ها باشه سی میاد بارداری یلدا ها یلدا که اون اضافه خبر نداری یعنی گیره اونین طف دختره میتونه الناخته شو میخو تو که این امروزی ان دیگه زیاد یارو خیلی پولدار بود شوهرش خیلی پیگیر شما بود شما راتو گم کرد با یکی دیگه ازدواج خواهی خوب بزنید ببینید یه اتاق به ما بدین که منظرش رو به آبی خلیج پاک کنید خیلی رفته اصلا مییید دل هم میخواد چشهای بچه همچنی آبی بشه کجایی؟ که خیلی من یالله سلا ورد دفتر بیتخوری میشود سلا بست سلام آقایت بابا چی بود اسمتون؟ بیخولی نه اختیار داره خیلی هم آقایی بفهموی خواهیش میک خداحافظ شما سگ رو یادم میاد. چتاوربونه، بورونه، باتل فارمیدا شده اسمش اره. آره دیگه به هر حال ایشون همسر او بنده دارن. خیلی خوبه. یه تفخاله ما هم که زنزلی آله چطور او خوبه همینجوری خشن جسور جذاب هر روز میاد سر کار صبح میاد. من افسراد شدم. خب گذارش. توی تو حسابای شرکت صندوق نمیگه داد پایین بالا شد. انداختن پایین من. ها واقعا دزدی کرده. میشینه هر میزنه این یه سوء تفاهم بود. ولی کلا ما دنبال یه شغلی هستیم که درخور باشه. خواهشن اینجا دود رو اندازین چون بخیر چواب خب دیگه چه خبر آخ آخ عجید تاریه خدا را آقای چی شد بالاخره کی کشته بودش کسی نه کشته بودش دوچاره یه سانه دریایی شد مم. مم. ولی متاسفانه همز معلوم نشد که علتش چی بوده تن شاید ماجر امون فریدون هی کنم نمیتونه حرف کن خواهی بیچاره لبا زبانش بند اومده امون فریدون ما شما فریدون یادتون نیست؟ نه یادتون یادتون توی یه باق پار از درخت های سبز با گل بزرگ قرمز و صورتی قفص فریدون به شاخه آویزونه خب دیدی که ناپدید شدن چه مزایایی داره؟ همه به هم نزدیک شدن و سر و سامون گرفتن من نمیدونم چرا انسان وقتی میمیره اینقدر عزیز میشه حالا اگر میفهمیدن با زنده این کلی ما رو سرزنش میکردن که چرا توی این سن و سال با هم ازدواج کردیم حالا اگر عمری بود چند سال بعد دوباره ناپدید میشیم البته از این فریدون باید تشکر کنیم که حرفی نزد فریدون متشکرم که ما رو لو ندادیم <laughs> خب عزیزان امیدوارم که از فیلم هرچی خدا بخواد لذت برده باشید عزیزانی که در تهیه ای این فیلم منو کمک کردن آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار آقای فرشاد آزرنیا سردبی رو تهیه کننده و بنده هم سنم صالحی نویسنده و راویه داستان یا شب دور میشه هرچی خدا بخواه